تقدیم به مهربان پدرم نه هیچکس شبیه پدر نیست بیگمان گشتم نگرد مثل پدر نیست در جهان او کوه نیست خود پدر کل کوه هاست سخت است سخت وصف پدر در زبان ما